سایته اینترنتی ایران فیلم تقدیم می کند We'll take the end of all time. Die gewachte, Schlesidech! Vaqtash Rashide Ni gewaqtash Rashide Ni gewaqtash Rashide O madah O madah O madah O madah O madah ah! Vaqtash Rashide Ni gewaqtash Rashide Be tabrik migam chao vaqtash Rashide Daram miyameli Daram miyameli چاپ بهت گفتم که من اشتباه کردم. ها. آخ خیلی. اوه مردم. خب واقعاً بابای تو ترسون دیا. بابای تو احساس حماقت می‌کنه چون هی صدای بووم بووم بووم میاد. <تصفح> بابات دیو مغز نیست، چرا؟ <تصفح> آ ببخشید رفقا بازم علامت اشتباهی بود واقعا شرمنده نه اصلا مرا خور کرده من دست شما آجایش نداریم خیلی خوب خیلی خوب حالا چیزی نشده که نه؟ مثل اینکه خبرهایی هست اینطور نیست؟ یه بابا من شکم هم اینجوری هست آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه مندی میدونم که خیلی حیجا زدی منم همینطور ولی یه خورده خودت های بابا چقدر شبیه دیگو عرف بیزنی راستی دیگو کجاست آه میبینم که بود یه سختگی میاد نتونستی منو بگیری پنجه هات دارم نیسوزن دیگه که به بر من گافجی کاف قاتش به بر من گافجی کاف قاف قا به چون منو بگیره چی کار کنم؟ چشم رو باز بکنم؟ با آروم باش، بچه رو میترسونیم بچه هیچ چش نیست، نگران بابا یه بچه داره زیرچشمی نگاه میکنی دیدمت این شما و این زمینبازی من نیکوچلون وای باقلاده است، عالیه وای مندی خودم درستش کردم این خونواده مونه پس چرا من که خونوادتون نیستم میتونی یه دونه موش بشی؟ خیلی هم دارد باشد ممنونم البته یه خورد ریزکاریاش مونده هنوز یه خورده کار داره باورم نمیشه تو خودت هم واقعا یه کودک درون داری کودک درون این حرفا چیه واقعا مسخره است من عندي منم توی همین دنیا به دنیا اومدم و بزرگ شدم اینو که دیگه نمیتونی عوض کنی معلومه که میتونم من گنده‌ترین جونور روی کره زمین باشه پدر بزرگ سب میکنی میبینیم چطوری اس پس 10 سال اوله بچه داری برمیاری یوسیت هیچ نمیخوام به چیزی دست بزنی این ماله بچه هاست مگه تو بچه ای؟ جواب نمیدی ها؟ دیگا اونجایی؟ معلوم از تو کجایی؟ اصلا فیلان حسل ندارم باشه بعدا میبینم اتا میدونی؟ فکر کنم دیگا یه چیزی شده نه بابا همه چیز رو برا برو با هاش حرف بزن ما مرد ها را که راجب مشکلاتمون با هم مم. حرف نمیزنیم فقط واسه افوال پرسی به همدیگه مشت بیزنیم خیلی مسخر هست آخه ما که مثل شما زنا نیستیم تا به همدیگه میرسیم از مشکلات هم بگیم مم. مم. باشه باشه من میرم هی اه اه آخه چرا این کار کردی؟ چه میدونم؟ گوش گندیه گو علی فکر میکنه تو حالت خوب نیست منم بهش گفتم راستش. که... راستش، داشتم فکر میکردم که دیر یا زود باید از شماها جدا بشم، فهمیدی؟ باشه، منم میرم بهش میگم که تو حالت خوبه، باشه میرم ببین، خودمونو مزخرا کردیم، توی سن و سال من دیگه حال و حسله یه بچه داری و این حرفا نیست من ظروت چیه تو خونه واده‌داری خب این خیلی عالیه برای منم خوشحال کننده است ولی منم پای زندگی خودمو داشته باشم فهمیدی نمیخوای با چه من دوبرات بپلکه نه نه نه تو نفهمیدی این مسئله این نیست نه برو برو, برو برو برو واسه خودت زندگی کن آقای ماجر اوجو اجازه ند زندگی کسل کننده من مزاحمت بشه آره برو فالچارتی چتا کسی که عصب نداره عالیه ای وايشا چیکار داری میکنی چی شده؟ ما میگم مردم ها با هم درد و دل کنن چرا؟ مگه چی شده؟ دیگو میخواد بره ببین، این بهترین دوره زندگیمونه ما داریم یک ککلزدی میاریم نه استید، اون ککلزدی ماره اونا هست، نه ما <تصفح> مگه قرارمون این نبود؟ تو چک شده؟ اوزا عوض شده، بعضی ها میخوان یه خورده با هم خلوت کنن واقعیتو باید قبول کرد واقعا خیلی خوشی داشتیم ولی حال دیگه تموم شده. پس فقط ما دلتمون اینه. نسیت، دو توی در کار نیست. یعنی که کلیگه ای میخواد با هم میاد. مثلا کش یا ایجی حرفمو زدم. خب آروم باش آروم باش من راحت دوست بیدا می کنم مجمعی باشه این توسه الان امتحا می کنم یه دوسته سلام منم شداری حالتون چه کره من دقل می تونم با خودم صحبت بکنم چی؟ آه Uff! Ah! Uh... I... I... hey, Voi. Z, лин. Chasing za nes! Shishini! Z... سلام وای، چه فلکسی ها، می دونم چقدر بد آدم تلها ببونه نگران نباشید، چی که تلها نیستید ike kemun pichet do she ma alam bar migerdam alam zudi bar migerdam ah vai shou bam alam ma ba bar migerde vai vai vai vai vai ya ya ya ya na boshi alam havasino daram vai shi ya vai shi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 بو قال منو ننم بچش شیتون راشا همه کمی خادم یا اونارو هات نشو آجی جام آخه من شما رو خیلی دوست دارم حالا با خاله الیا عمو منگی آشنا بشین سلام سلام اعتوالف می کنم اژوارد شلی و یلکم سیت این کاری که میکنی اصلا کار خوبی نیست دیگه با تو یی صحبت نکن اینا بچای تو نیستن برشون گردون اه. تو نمیتونی با چه داشته باشی؟ چلو لبیکونم. اول این چه بچایی یکی دیگه ان؟ دوم این که قیافه‌ی یکی رو خیلی بد چشیدی. نگاهش کن. ای... سی. حتماً مامان واقعیشون داره دنبالشون می‌گرده. نه اینا همون چوری افتاده بودن رو زمین، رو یخا. حتماً سرنوشت این بوده که من پیداشون کنم. آی وای وای. سی. من میدونم چقدر برات سخت. تو هم یه روزی صاحب خانواده میشی. یه دختر خوبم جیرت میاد. شاید نه چندان خوب. ولی زیادم نبایی از سخت بگیریم یک چی که اسه بویاییش ضعیف باشیم منظوره من دیگه چیز دیگر باشه پسش امیدم سما خانوازه ی خودشونو دارین منم تنها خب سیکار کنم منم میخوام خانوازه تا شکه باشم باشه برشون میگردونم من تنها مقصرشم سمایی یه تنها یه تنها یه تنها این طفلت خیلی تنهاست مغمونو من ندارید سید سب کن نه بابا ولش کن چیزی نیست خانوادهی خودشو پیدا می کنه فایده سید بودن همینه دیگه هستان چرا پسشون بدم؟ من آشق بشم من همکارم درسته هم دوست داشتنیم هم دلسوزم این حضرت شما شیه؟ هم می گفتم که موافق ليك. وای نه، اینجوری نکنید. چه جوری نکنید آش جانم. الان یه جای خوش برایتون پیدا می‌کنم. بذات خوشی که جون باکادم. وای. وای مادرو پیدا بودنم شخ که ها. شاید حنوت آماده نیست. 雨ë këmi 有點 آی بای آو نکنید باشا خواهیش می کنم خیلقلقم ندید خواهیش می کنم گاز گرفتن اصلا خوب نیش آو عزیزانم خواهیش می کنم گرگر نکنید گرگر نکنید نکنی نکنی گش نتونه ها گش نتونه آو فهمیدم پس گش نتونه آو می دونم باید چی کار کنم وای جانم علوتون تا چشم يا ربي شي خليش باشي يلا شي شروع كنيم اي اي ماي مال واقع شهر بانم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 خم متاسفم بشتا نمیتونم بذارم برید اون تو خیلی خوب باشه اشکال نهاره برید تو فقط به چیزی دست نزنید با دوید بچه ها زمین واضی افتاداشد نه نه نه سب کنی درد کنی در نه نه خواهش میکنم در این تو ای نه نه نه خواهش میکنم با اون دست نزن بای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 نه، نه، نه، اولم نده، اولم نده مارگو به سرم اومده حسن، زوری داره بچم سپ کن، سپ کن، خواهش بیکنم، سپ کن لا. لا نه، نه، نه فناچم آوازه باش نه، نه، اما خجاره هل بگه نه، نه، نه آه، اینجا زمینه باشیه خب بزارید حقای دوستانم باکوین به نظرت من یه جوری نشدم یه جوری؟ مثلا چه جوری؟ <تصفيق> ببینم تو از کجا آمدی؟ وای نه آه! آه! خیلی خواب دیگه بسکت توفش کن اگه توفش نکنی این دفعه دیگه نمیارم زمین بازی یک دو مجبورم نکن بگم سه که به فارم این تحویل بگیرید بچه‌کماش بگیرید این بچه‌م فداچه‌م نیست این دیگه تحصیل من نیست وای بچه‌م زوت باش و وای کن زوت باش زیت السلام السولین نو فداچه‌م <تصفيق> نو ساب کوت تو اینو گان شرمنده ام چرا خراب شده ها؟ نداشتن آسن بازی کنیم دست به ایچه هم نزدیم <تصفيق> ببینه ما همینه که کسی آسیبی ندیده به جدون بچه و اون یکی بچه و این یکی بچه بهت گفتم برشون گردون ولی تو گوش ندادی حالا ببین چی کار کردن؟ خب این ها یکم نظم و ترکیبشون کمه همین خوردن بچه های دیگه اسمش بی نظمی نیست هستشون دارن که چه عالی، حالا بیا بهت مدال بدیم، برای جشن بگیریم، ها؟ اونام حالا اینجا نیستن هرچی هستن و هرکی هستن برشون گردون، همین که گفتم منزی، من که من نمیتونم بچه هم رو فیل بکنم فرار کنیر نهشیزی نیست بچه هم آمان پیشتونه، هستی زنم یکی نهرانی کشه هم آه آه اوه اوه کوفوکا چاره کجا پیدا کرده فعلا مهمه که صاحب واقعیشون خیلی عصبانیه سیت هایدونه. ما یکمبیش، از هیمازم لکند از برگردن. هشکس چش گام نخوره.، هشکس. كونین ابل ما پاره های گم شده هاشیمو را همونو کون کردیم با با ای سیت اون بچه ها را بده بهش! اون مادرشونه! از کجا بدونم اون مادرشونه! خب دیوانه! کارت شناسایی میخوای اون یه دای نصره! من نه! این کفتک های محسوم ها به اون گوله میشه خودم نمیشم! اونا فقط یه روز پیشت بودن! ببین! اینا بچه های من هست! من جرزون نشه! من رشتی تا باشده همون! سید! سید! سید! Bona djeghe Jukheba mëzhe nëst Aslan Komak Seed Laba dalon seedon përri nëst خواب هست مارده آره مارده دلتنگش میشیم نه نه نه نه به این زودی خواب الی از اینجا باید از هم جدا بشیم شماها برگردید به ده کده باشه من حتما به حرفت گوش میدم الی مگه حکالشو ندیری؟ این کار خیلی خطرناکه با اون کنده درخ حرف بزن باشه وقتی نجاتش دادم می کشمش خوب شد؟ قونمافل خوش دی بابا یاد در جلو وازیه کمل دار سر چیک استناک سی سی اوه وینا نو نو نو اصلاً خوب نیست. الی، الی ساب کو. الی، الی گوش کن. اگه حالت بد شد و حس بدی بهت دست داد، صد فوری به من بگو که ببرمت بیرون. خب یه چیزی بگو دیگه مثلا بگو که من حالم بده، منو ببر بیرون. اینطوری بگم من حالم بده، منو ببر بیرون. چطوره خوبه؟ نه زیاد خوب نیست یه چیز کوتا بگو مثلا بگو که بگو هولو هولو؟ آره هولو خیلی خوبه میوه جالبیه من خیلی دوست دارم تو دوست داری؟ منم دوست دارم ام. اصیب که خیلی بتره هم گرد هم خوشمزه است او؟ باشه راه شنگه. دیدین گستون اینجا فوقاً عاشقانه. انگار اصلا یه دنیای دیگه است. تا خبر ندشتی همچنین جی ام هست چی کار می‌کنی؟ امادم گردش <تصفيق> مگه نیمینی؟ امادم تو اماده سیت واقعا تو خیلی شجاع هستی حالان وقتش نیست دقیقون، باید فرار کنیم اوه <تصفيق> بروس ببید این دایناسور دا رو ترجمه می‌دی یا اوریکیو چقدر احساس میکنم که کوچیک شدم منم همینطور منم <تصفيق> همینطور منم همینطور رافیق موقع ان کارو دالیو تو مثل داداشم باش باش منام میچار ها میسه بهندو اسپانی ها ها گون بس من باکه چنت مارگی چه دماغ بلندتریه چه زبونه کچیکی اینجا چی کار میکنید یه دایناسار دوست نمونه برده طب پس مرده فرضش کنید آه. به دنیایی من خوش آمدید حالا برید خونه برید دیگه بدون سید نمیرید الی وایسا شاید حق با این رید میزه باشه شاید این همه راه اومدیم باید پیداش کنید دنشون پیدا کردم برید آه! اگه از اونوری برید دوستتون رو میبینید ولی تو اون دنیا راه بهتریم خست اصداد آره آره ماما این دیانه ساره با ستا بچه هاش و یه جونور عجیب داشتن از این وری میرفتن م. اون جونور زشتو عجیب دوستمونه از روی رد پاهاشون فهمیدی؟ نه رستش قبلا دیده بودم اشون داشتن اونوری میرفتن از دارم دا آتشوشن های وعال و, و جنگل های بسیار مخوف آره در رایانیک و درگاه های خروش های باشه خودت با دیوونگیت کنار بیا ما چه رفتیم فهمیدی؟ رفتیم سب کن سب کن سب کن سب کن سبر <تصفيق> چرا حفظم رو گوشت نمی کنین شما ها تو نمی تونی اون رو نجاتش بدی فهمیدی؟ با اون آجایی نصر نیمت می خوای جلای اون هیولا رو بگیری که بهش می گم وای وای وای می ترسیدم اسمش یا چیز دیگه باشه مثل شلدر یا تیم ببینم منظورت اینه که از مامان دایی ناشترم بزرگتر آره آره آره آره پس چی؟ اون اینو به من حدیه داده چقدر جالب اون بهش حدیه داده چقدر عالی خیلی کارش درست بوده بریم من بهشون این که به من حدیه بده نظر چیه هم؟ اوه اوه اوه اوه میدونید شما چه راهیو انتخاب کردید آره؟ ارے ارے یہ روئے خطا نہ چمخو بن هزار چنگلی بحث نکنه کیه. ها؟ ساب کنی. چرا؟ چی شده؟ درد داری؟ چی؟ نه، فقط یه حس عجیبی دارم. خب شاید گشتاته، قند خونت اومده پایین. بیا بریم میوه بخوریم. چی میگی؟ آیا تایی تو, تو بودم این کار رو نمی کردم؟ اینجا که زمین بازیت نیست خب چیه؟ یعنی میگی باید از میوه چیدنم بهترسه اما ره؟ چیم کشم دسته تا میکشیم؟ آه آه آه آه من دیم چیم کشیم؟ واقعا ندسته تا میکشیم باش دوشتوامونو خواست بوده زور باش شد. حالا و آجب تیکه تیکش می کنم جای شما خودم این کارو نمی کردم خانم محترم شیح اجازه بدید که همه چیزو خودم درست بکنم خانم درست صحبت کن خیلی خواب اول من می رم اون چاقه رو نجت می دم من چاق نیستم احساس می کنم که دارم هز می شم تو آفیق می کنی از من لاغر تری؟ منظورم با تو نبود منم حسش می کنم کوماک یکی کوماک کنه زود باش وقت رفتنه دارم میام گنده ها حالا بگو ببینم چی شاخه گوشت خر باید بود شما ها خوبین؟ آه ممنون که نجاتمون دادی ببین میتونی کمکمون کنی که سیدو پیدا کنی؟ این کار لازم نید چرا لازمه؟ باشه کمکتون میکنم اما من قوانینی دارم قانون اول هیچ که رو حرف من حرف نمیزنه قانون دوم همه با هم حرکت میکنیم و قانون ثوم اگه دستویی داشتید برید لایه درخت خیلی خواب زود باشیم بریم قبل از همه اینو باید از همه تسته حوش بگیرم و قانون چهار روم برید دوستتونو پیدا کنیم خیلی یام یام ای چیزی نیست نه گارا نباشید هیچینم میشه فقط خودی داریم تا میخلیم همین بچه‌ها ییکو دایکی مون پایلا نا مانجا ودار جونیم که خوردمشم ول Va! Kaçtık, bize. Kaç yavşun. Ne? Baby, daha mükemmel nadirim. Bir müziklere bakalım. Ben zaten ben akşal in türlü doğrusu. Na na na in türlü ham doğrusu. Vay be, başka her şey tabii ki bak. اوه اوه آگی نه نه واقعا خیلی منم منم تونام به حالم خیلی خوبه این فائده ببین آگی مله بخاری برای بچه‌ها بازی و موسیقی داره ها یک یک من ابه مگه آگی اصلیان دیدی یک یک این حیونه که گفتی ما رو می‌بینه. آره، می‌بینه. رودی، بیخره تا. فکر کردین که اون کیه؟ اون هم می‌بینه و هم خوب می‌شناوه. دندونای تیزی هم داره. باز هم بریم؟ ها؟ آ، یاسر رو هم برو کنار. کیش کیش، برو برو. از وقتی که بچه بود میشناختمش میدونی اون خیلی پروانه خوبی بود راستو اینجا تنها زندگی می‌کنی آره هیچ کسی هم نداری این واقعا عالیه آره هیچ کسی رو ندارم نه وابستگی نه عادتی بهترین زندگی که یه آدم مجرد می‌تونه داشته باشه شنیدی این زندگی که من می‌خوام الو استا ننه نمی‌تونم صحبت کنم باید برم یه یارو یا نجات بدم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> آره بعدم آت صحبت میکنم آره میم دو مالت من خیلی تا رو دوست دارم <تصفيق> ببخشید خیلی خب باشه بعدم با تماس میگرم خیلیلن نمیتونم حرف بزرم خیلی خب باشه منم دوست دارم برو برو خودحافظ خودحافظ خیلی خب میتونیم ادامه بدیم تو هم یه روزی اینجوری میشیم منجره کذاشن در رای مرک خب ما اول میخواستیم اسمشو بذاریم در رای تفریحات سالم ولی نشد حالا چی؟ خانون؟ نا خیر اون این کارو نمی کنه ای خانون اول بگو دیگه ماموت ماموت اگه تو یادته بگو تو باید مغزت از بقیه گنده تر باشه همیشه به حرفای باگ گوش کن چشماتون رو ببندین نفس عمیق بکشین و خودتون رو محکم تاب بدیم تاب بدیم؟ آره اصلا سخت نگیرین هیچی نیست تاب کن رفتیم که رفتیم الی حالت خوبه؟ خیلی راحت بود خیلی خوب همه گیه دیگه را میافتید کاری نداره <تصفح> نگران نباشید این یه مشکل تکنیکیه فقط نفاستون رو حبس بکنید هیچی نیست <تصفح> من دیگه نمیتونم ای وایدنی نفذ بیکشیم ما زنده این؟ یا چه صدایی که اصن 기다르마 آ من هسه دیتو خیلی مسخره است و صدای چه مسخره تر گوش کن گوش کن یکی تو ساو いきなさい ساو نو تو باراک ببینم شما دیوانه شدی هوا که سامین است ها آری بورا، شادیمورا شادیمورا، آری بورا دادا. ای نخاندین. ای نخاندین. قانون شماره 1 چیه؟ فران <تصفيق> می‌خندن خب مگه چی شده؟ اینا هم از خنده مردن. ها؟ <تصفح> دیگه نخندیم آه ماردم میخواسیم سیدان اجهت بدیم حالا همه با هم میمیریم خیلی جالبه به من که خوش میگذاره <تصفيق> <تصفيق> بابا کیبه سیده همیتون آره کیبه اونه همیت میده ولش کن <تصفيق> مرسی که من را توی سیاه چرا انداختی سالها بود که اقمد نخندیده بودم ممنون از تو صده خنده ایتون رو شدیدن دیگه خیلی ناوره بابای <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> جگلی جگلی چزگی بس ها مامون نمیریم مگه نمیفهمی آمه کارو دادم بونی آره نه داشید ماجور هست چی اگه قرار آدمی باشید همه باتونایی آه تو دای خان تا کجاشو شنیدی ها من همه‌شو شنیدم آره واقعا شرمنده میگم خیلی خندیدی ما من که اصلاً نخندیدم خیلی خوب دیگه بهتره رو بیافتید خب چی زیادت نرافته وای رو دیری دیری دیری مهاجه خطنم خیلی خواب بفرمایش اینم قشا بفرمایش خیلی <تصفح> خواب <تصفح> چی؟ سبسی جال دوست ندارین؟ پس چطوری میخوای دایناسارای قوید یا بزرگی بشید؟ نه خیلی من با گیاه خاری موافقم بدنتون جوونتر و سالمتر میمونه بدن منو ببینید دوستان نگاه کنید چقدر خوشند ببخشید دارم با شما حرف میشنم اه اه اه اه اه نه نه نه نه درست نیش، یه عالم پر داره و کلی، آتو آشکال داره ایوان، این که زنده هست؟ نه نه، ما نمیتونیم حیوانهای زنده رو بخاریم، خیلی بده حالا برا برو و آزاد باش، ای پرد پرندگه کسویوی خوب به زیرود هی کازا داری میری؟ این نتیزه ی حرفای من چرا خواه تو اصلاح نمی کنی؟ من که دارم با دیوار حرف میزنم؟ من میگم اینا گیا خارم تا میگه من میگم اینا راجع به چی حرف میزن تا میگه اصلا حرف حساب آدید میشه میبینی؟ جواب داری همه شعال همینه E toni <toms> gashmi ta, sido ke az hame bojaktari. E kojadari miri, man boltam. Ay, ay. Ley. Na bogatyn karabokani, khatarnoke. Veli ona ga go اون آقا دیوونه است، خطرناکه مذرود اینکه این آقا واقعا کلا دیوونه است آره دیوونه است آره پس شوی که دیوونه است حرفاتو نشنیدم این چی نگو آره دیوونه چی نگو آره این دیگه داره دیوونه بکنه آره این داره با پاهاش حرف میزنم ببینم تا حالت خوبه بینم تو اگه را بیفتیم رودی همه من را میخوره عد آره رست میگه اون میخوره تمون ام اونجا وایساده بودم. پاشتم دیوار بود. هیچ راه فراری وجود نداشت. فقط باید به چشمه‌ی بزرگش نگاه می‌کردم و می‌ترسیدم. همین و بس. چشمه‌ی بزرگ خیلی وحشتناک. که... آآآ <صح> <صح> <صح> <صح> منه متاسفانه ولی زنده موندم <تصفيق> وقتی اونقدر به مرگ نزدیک بودم بیشتر از همه چیز احساس زنده بگدن می کردم از گلوی تنگش بالا اومدم و زبون کوچیک و لذجش رو سفت گرفتم و زبونش رو فشار دادم و بعد اومدم بیرون و هیتاب خوردم تو رو، عقب، جلو، اقب، جلو، اقب، جلو، اقب هی جلو، هی اقب، هی اقب هی جلو عقب هی جلو هی عقب ها بعد اومدم دیونا <تصفح> بعد از دندونش یک چاقو برای خلاف درست کردم چاقوی از دندون ایولا دردون ایولا عالیه قانون منه دیگه یه دندون با جایی چشم یه دماغ با جایی چونه و یه پشت به جاییه بهتره بعضی چیزا ناگفته ببونه دوستن تو واقعا عالیه هستی حرف نداری بیرقیبی برخ برخ برخ برخ بو من جواب ها چیه خب هاستی که خب حالا ببینم میخواد یه قصه دیگه راجع به هیوله دیگه بشنوید به نامه ریچل اره بالا ارب امشب باند از یه عفی قصه گفتی بیا علی باید بریم استراحت کنیم زود باش بیا استانه خوبی بود. آره شما برید یه استراحتی بکنید. من نگهبانی میدم. بذارید ما وقتی ما باکمن نگهبانی میدین. خیالت راحت باشه. آره ما استاد شب‌یداری هستیم. ها. شب بخیر. مايشان، وای وایشان ببینم پاش. هه. می. می. خوب بخوید باشه ها؟ فردا جمعه هم میه. شاید برید شکار و کوشکار. دل هم برای دوست هم تنگ شده ولی اونا دل تنگ من نیستم سما ساسن مهربونی این میدونستی؟ Mandy Oh crash Eddie Mandy شده تو حالت خوبه؟ آه. متاسفم. می‌خواستم ببینم تو حالت خوبه یا نه. ببخشید که آوردمت همینجایی. هی این تقصیر تو نیست. هممون این تسمه رو گرفتیم. باید سیدو پیدا کنیم. آره. شاید برای سید دوست بهتری باشم. ولی برای تو همسر خوبی نیستم. دوست بهتری باشی. جاک میگی تو جون خودت و زن و بچت و به خطر انداخی تا رفیقتو نجات بدی؟ <تصف> تو بهترین شوهر دنیا نیستی ولی دوست خوبی هستی آه آه آم حساب کنید. یه بو میاته. امم بوئیه چیزه پشمالوئه. کینگار سال هست. خودشم نشاسته. آ سیده. ماموتا این صحنه ارتکاب جرمه. خازاکنده شده اینجاست. استخونه خون آلود، سبزیجات نیم خورده شده و چیزای دیگه. آ جسدان اینه دایناسور حمله کرده سید با سبزیجات دفاع کرده و دوست شما دایناسور را کشته با کارام بروکلی دیوانه شدی هیچ نشونه ای از خوشونت اینجا دیده نمیشه آره جسد دایناسور کجاست آره جسد دایناسور فیلم دوم سید داش سبزیجات میخوره دایناسور میخورتش و اون میمیره اونم با کارام بروکلی دقیقاً کیو و کجا عقلت از دست دادی سه ماه پیش بود یه روز صبح از خواب بلند شدم با دیدم یه آنانست تویه دستم وجود داره از نوشی دنیه خیلی خوبی بود باک فکر کنم یه نشونه اینجا هست خب دوست شما شاید زنده باشه باری زیاد زنده نمیمونه رودی داره دنبالشون میگرده وای درسته به جای پای رودی نگاه کنی اون واقعا خطرناکه او خطرناکه دوستان مراقب قدماتون باشین صدای چیه؟ صدای باده داره با همون حرف میزنه خودتاره چی میگه؟ نمیدونم من زبون بادر بلد نستم ها؟ علی من خوبم نگرانم نباش فقط یه لی مو واسه باش مندی بپر رو بغلی اوه اوه اوه سلام بیا پیشت بعد نیچش هوا خوبه همسایه‌های ای ای سلام همسایه خوبم رودی رودی صدای اینجونه برات حالا نشیده بودم صدای سیده بویت سری بریم ماندی آناناس آناناس بازی وقتو از یوم میگه گریپ فروت لیمون شریف ازانت قاطی کرده چی بود؟ هولو هولو هولو هولو وقتش آه آه. رسیده وقتش رسیده وقتش رسیده حالا چی کار کنم چی کار کنم از که جا بیارم خواتنه یه دار او. از طرف من یکی بزن به کله اون باوریت انجام شد همون جا باش همون جا باش علامی هم فقط یک کار میشه کردی یکو موشا بمان بیا منت من, من دی تو همینجا بمون فهمیدی چی تو نمیتونی اوتوری ولمون کنی بری پس قانون شماره 2 چی میشه ها قانون شماره 5 میگه که شماره 2 رو ندید بگیر البته وقتی که یه ماده توی تیم ما نیست خیلی خب حالا حرف منو گوش بگیر و بیا اما تو باید به ما کمک اه. کنی دیگه اه. کافیه به خودت مسلط باش اه. این چه جی حرف حسابیه بریم رفقا ما بابا بابا حرامم باشی آفرودو؟ از ذاتش تکل. منی این کارتن cibo برای همین می‌خواستم با من بیاد. پس اینم فیلم بازی می‌کنه برای چی فهمیدی؟ آه خیلی خوب. آه چه ذلیست بابا، تره، پودره mia. آه نگران نباش عزیزم. داری سر وقت میو.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 moja be ay fallet kuda ja yi pili bay ay ay ay sara bari mojarujui amade bala bawan hal khob mirim pay Ja gëma, ti më se vetë ti gjoftit? ببرم پیشش گوش کن من مواظب علی‌ام تو ترتیبو بده چی؟ من دیگه اونو به اسپرسو انکره ختممه بهم اعتماد کن رفیق باشه شروع کن دارم می سوزان بو ی سوختنی دارم یاد روی پنجات هم من نمیرسی ها... ببخشید آقا میشه بگید تو اینجا چیکار دارید آ راست میگی ببخشید حالت خوبه خوبم معلومه که خوب نیستم مگه نمیبینی خیلی خوب خیلی خوب الان من دمی عده بگید اوه این دیدی سان سن میشکی دارم بمونی آره میشه Ma che mi muama? Ti dighe me lesco. <laughs> ah! Da sam le shot. Oh no! Ah. Eh, un cerò. Fare un ragere. No, sì. فهمیدم اون راجر تو چه میدونی اون سیده فاستر بهش میگی راجر اهم نیست آه. Şive gemar mulaka. Ha haber doğru nefes bekleyişin mutmain ol. Halet ruhu ise şeyi niye işte asab ona hiç nişan. موازه باش دیگو نه ترس، نه ترس، من هارم خوبه یکم از اون میوه بچینیم موازه دیگوی ازمشون، افرین! اینو بزرد! بابت کسان در افتادیم، کچونم! بگ بگ بگ بگ بگ بگ! برو برو برو برو برو برو برو برو! بیاین کارشون تمومه! ما قیعت استرالی داریم سقوط می کنیم! این رو نگاه کنین! زود باشیم بچه ها وفف وفف نفسش بوی ماهی میده وفف خیل خب همه آماده باشیم آه, آه منطور دوست دوست دوست دارم منم اینطور زود باشیدیگه بیدار شا به هنش بیا یا این پایان زندگی سید قهدمانه نه نه نه نه نه نه نه نه و منم ممنون که همه اومدید دنبالم اما کی خلبانی تب کنید بچه هم حتی نتونستم به آشون کدا وزی کنم خیلی نراحت کنندست تو میتونی سعی تو با کنم نمیتونم چرا میتونی اجله کنم تو خواه تو جای من نظار نمیدونیشی به من میتره خیلی خواه باشه سعیمو میکنم خیلی خواه باشه خیلی خواه باشه ترسی نداره وای سرم داره گیش میره خیدی گیش شدم آه. آه. بیا من دی بیا رفیق دیگه داره وقتش میرس آه شیلو. بیا اسمشو بذاریم الی یه الیه دیگه من یه اسم بهتر سراب دارم هولو هولو چرا که نه هم. شیرینو گرده تنشم پر از پرزه میگینی هولو دوست دارم بابا دیگه دری گریه میکنید ایگو؟ نا نا نا اصلا من چیزا تو چشمم ندارم گریه میکنم. او um مای گاد سیدن ای اون بسار نا دختره نا دختره <تصفيق> وای چه قاجار خوشگله وای چه خوشگله چه قاجار ابروهای پرپایی داره میشه مامانش میمونه اه، اه، نراحت نشی مندی ولی اون هیچ کیش به تو نرفت چه خوبه که برگشتیت باید بگم که واقعا دلم برات تنگ شده بود <تصفح> می <هم. تصفح> کاش با سیمانم اینجا بود و با هم دوش می‌شدی الی کو کوی گل داده بودم دیگه در این موقع گریه نکنم آره راس میشی دام وِلکوم یادم رفته بود خانواده داشتن چه حسی داره تو چطور درد خواسته که بچه داشته باشی خیر خب ماموچا بیاید بریم خونه Thank you. tried to the heart and lonely ground you found somebody new crack my shell and tune how could i foresee you turn out to be such a backtooth caster now <laughs> now there's only strife and my life this lost all meaning how i miss your furry lips your shallow rapid breathing i wish you only knew that i'm only now Alone again naturally Enama zin ma'muta in hamun jaye ki ham digara dide budim xeli khosh guzht hich munam nashod Ene siyat mosfar nistan doroste doroste همه موجودات فانی همینطوری فکر میکنن خب دیگه راهمون باید جدا بشه واقعا که اوقات خوشی بود خب معلومه که اوقات خوشی بود ما تنها نیستیم مگه نه؟ اینطور نیست؟ آه. سلام رودی سلام رودی جا گوند بک تو قال من می کردی بیا بگیرش فرار کن زود باش تو وابسته باش تو صاف هست تو برو Ci chiedi, ma pensate che io a me mi ramm... Via, per canar, per in canar, per in canar, per in canar! Diego! Oh. Oh. یه یکی از یکی از ایل یکا شش برگشش هم سعی ادافع بعد موفق بشی دوست من برین دوستان بیاین بریم سب کنه سب تو اینا اینی Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Huh? Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Eeeh! Oh, for him, among you, the pecanish! ترش موز بیا اینجا بچا می خوام یه چیزی بهتون بگم شما به اینجا تعلق دارید من میگم که یه روزی دانیا شورای بزرگو قدرت من دی می سی درست مثل مامانیتون ما بان Më bësa bësa më bës Në alu استاره خوبی هستی سی. متشکرم. میشه برای سره بچهای شما باشم؟ اصلا حرفش هم نیست. چرا دیگه مجانی باشم؟ راجبش فکر می‌کنم. پولا. ما حالا درس. حالا هم رفتن. من چی کار بکنم؟ جوابش آسونه با ما بیا. یعنی با شما بیام؟ اه اه اه هیچ فکرشو نکردم اینقدر اینجا بودم که احساس میکنم اینجا خونه ای من و من به اینجا تعلق دارم حالا ما رو ببین با تو فرقی نداریم درسته هیگه <تصفيق> <تصفيق> دریم یکی باید واقعا اون رو از بقیه موجودات دور کنه. مваثباش دوست من. هیچ‌وقت فراموشش نخواهید کرد. همگی آلشون خوبه؟ پس با کجاست؟ نگران نباش اون رفت به زادگاهش نکنه یه وقت چیزیش بشه شوحید گرفته اون هیچیش نمیشه من نگران رودی هستم که تو زیاد از بچه خوشت نمیاد ولی واقعا میخوایی کجا بری من هیچ جا نمیرم رفیق من خانواده خودم مادرم خب درسته که ما یه خانواده هستیم و توی این مدت هم قبول دارم که زیاد حواسم بهت نبوده ولی الان میخوام جبران کنم فقط باید به این بیه فرصت بری اه! ممنونم ممنونم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نبینی شکل زود بزرگ میشن؟ مثل بچه های من یهو شدن داینا شهار خیلی جالب بود اونا بچه های تو نبودن چرا؟ بچه های من بودن؟ خیر نازنینم به عصر یخ خوش اومدی جاتی دانلود فیلم ها و سریال های بیشتر به سایت ایران فیلم مراجعه نمایید